شنیده‌ام که باغ ارم آنقدر زیباست که انسان را به یاد بهشت می‌اندازد بلی در شعرها و متون زیادی درباره این باغ سخن گفته شده است این باغ قدیمی که ساخته شده است دقیقا مشخص نیست اما از حدود 800 سال پیش باغ ارم در شیراز وجود داشته است پس خیلی قدیمی است. اکنون از این باغ و امارت زیبا چه استفاده می می‌شود؟ اینجا الان متعلق به دانشگاه شیراز است و یک باغ گیاهشناسی محسوب می‌شود. گیاهان بسیار متنوعی در اینجا به چشم می‌خورد. چه امارت زیبایی و چه حوز بزرگی. وجود حوز در جلوی عمارت از نشانه های ساختمان های ایرانیست این ساختمان سه طبقه دارد آن نقاشی های بزرگ بالای امارت را میبینی؟ بله خیلی جالب و زیباست آن تصاویر چیست؟ آن تصاویر بر اساس داستانهای شاهنامه و نبرد شاهان قاجار آن تصاویر بر اساس داستانهای شاهنامه و نبرد شاهان قاجار بر روی کاشی نقاشی شده است. خوب است که چند ساعت وقت داریم. دوست دارم این باغ را با دقت ببینم.